واقعا این شهر زیبا و بزرگ است. فکر میکردم اصفهان شهر کوچکی است. نه. اصفهان یکی از بزرگترین شهرهای ایران است. این زایندهرود است؟ چقدر زیبا است. بله، اینجا زایندهرود است. اسم آن پل زیبا هم سی و سه پل است. بسیار باشکوه است. فکر میکنم این پل خیلی قدیمی است. بله. این پل حدود 400 سال پیش ساخته شده است امشب به اینجا میاییم قدم زدن روی پل و اطراف رودخانه درپذیر است حتما همینطور است روی زاینده رود فقط همین پل وجود دارد؟ نه پل شهرستان قدیمیترین پل زاینده رود است پل شهرستان خراب شده یا هنوز سالم است؟ پل شهرستان سالم است پل خاجونیز پل دیگر زاینده رود است دوست دارم از زایندرود و پلهایش عکس بگیرم هر روز جهانگردان زیادی این کار را می کنند پارک اطراف رودخانه هم بسیار زیباست خوشحالم که دوربینم را آورده